Thank you. ماه مه غریبی بود. روزنامه‌ها و تلویزیون پر از تیتر و برنامه‌هایی بود که به آن حق مردن نمی‌گفتند. زنی که مبتلا به بیماری لاعلاجی بود، مطرح کرد که قانون باید از شوهرش حمایت کند تا هر وقت بیماریش به مرحله حاد رسید، او را به دیگنیتاس تاس ببرد. یک فوتبالیست جوان بعد از اینکه والدینش را متقاعد کرد، او را به آنجا ببرند، دست به خودکشی زد. پلیس هم وارد ماجرا شده بود. در مجلس اعیان بریتانیا هم و های زیادی شده بود. گزارش‌های خبری را تماشا می‌کردم و به بحث‌های قانونی افراد صاحب نظر که موضوع را از آباد اخلاقی بررسی می‌کردند گوش می‌دادم. اما من اینها را کاملا بی ربط با ویل می‌دیدم. در همان روزها ما به تدریج توانسته بودیم ویل را بیش از پیش متقاعد کنیم و بیرون ببریم. حتی حاضر بود به راه دور هم برویم. تئات میرفتیم به تماشای رقص موریس میرفتیم. ویل با قیافه خشک و جدی به دستمال و زنگوله رقصنده ها نگاه می کرد. اما صورتش از فشاری که به خودش میآورد کمی سرخ می شد. یک روز عصر هم به کنسرتی در فضای باز در یکی از شهرهای نزدیک رفتیم. بیشتر مورد علاقه او بود تا من. یک بار هم به سینمایی که چند فیلم نمایش میداد رفتیم. اما در اثر تحقیق ناکافی من یکی از فیلمهایش در مورد یک دختر مبتلا به بیماری لاعلاج بود. میدانستم که ویل اخبار روز را دنبال می‌کند. از وقتی نرمافزار جدید تهیه کرده بودیم وقتی بیشتری را با کامپیوتر صرف می کرد. حالا یاد گرفته بود که به کمک انگشتش ازش محس را روی صفحه حرکت دهد. این تمرین دشوار او را قادر می‌ساخت اخبار روز را در اینترنت بخواند یک روز صبح وقتی برایش فنجانی چای آوردم دیدم که سرگرم خواندن مطالبی در مورد آن فوتبالیست جوان است نوشته که با جزئیات کامل از تلاش که جوان برای گشتن خود انجام داده بود میگفت وقتی فهمید که پشت سرش ایستاده ام را تغییر داد. این کارش چنان بغزی در گلویم ایجاد کرد که واقعا نیم ساعت طول کشید تا برطرف شود رفتم کتابخانه و آن مطلب را در کامپیوتر خواندم حالا مدت ها بود که روزنامه می میدیدم می دیدم که جروبه در این زمینه بالا گرفته است. اطلاعات ارائه شده که به تلخ تلخوت کاندهندهی خلاصه می شد. اغلب چندان رضایت بخش نبود. مطبوعات جنجلی والدین فوتبالیست جوان را به باد انتقاد گرفتند. تیتر می زدند، چطور توانستند، بگذارند بمیرد. من هم همین احساس را داشتم. مک اینرنی، فقط 24 سال داشت سه سال پیش دچار آسیب شد که مدتش خیلی بیشتر از ویل نبود آیا بی تجربه تر از آن نبود که بگوید چیزی برای زندگی کردن باقی نمانده است؟ مطلبی که ویل در مورد او خانده بود هیچ نظر کارشناسی خاصی ارائه نمی کرد. اما به طور دقیق آنچرا که در زندگی این جوان رخ داده بود بررسی می کرد نویسنده با والدینش صحبت کرده بود میگفتند لئو از سه سالگی فوتبال بازی می کرد. همه زندگیش فوتبال بود. در حادثه‌ای که میگفتند یک در میلیون است، وقتی تکل به خطا رفت، آسیب دید. همه کاری برای دلگرم کردنش انجام داده و تلاش کرده بودند به او بگویند زندگیش همچنان ارزشمند است. با این حال دچار رفت افسردگی شد. ورزشکاری نبود که دیگر نتواند ورزش کند، بلکه ورزشکاری بود که دیگر نمی‌توانست ترکت کند. و گاهی بدون وسیله کمکی نفس بکشد دیگر هیچ چیز خوشحالش نمی کرد زندگیش عذاباور و تلخ بود افونت مشکلت زیادی می آفرید. به مراقبت شبانه روزی نیاز داشت دوستانش را از دست داده بود یعنی خودش نخواست دیگرانها را ببیند به دوست دخترش گفت که دوست ندارد او را ببیند هر روز به والدینش میگفت می گفت که نمی خواهد زنده بماند می گفت که دیدن زندگی دیگران حتی وقتی هم به اندازه نصف برنامه های زندگی او باشد برایش عذاب و, و نوعی شکنجه است. دوبار با گرسنگی که به خود داد، دست به خودکشی زد و کارش به بیمارستان کشید. بعد وقتی به خانه بازگشت، به والدینش التماس کرد تا او را در خواب خلاص کنند. وقتی این مطالب را در کتابخانه خواندم، گوتی دستم را روی چشمانم گذاشتم تا مانع ریزش اشکایم شوم. و بیان که به حقیق گریه بیفتم نفس بکشم بابا از کار بیکار شد ولی روحیش را رو مثلا از دست نداد. آن روز بعد از ظهر به خانه آمد. کراوات و کت شلوار پوشید و سوار اتوبوس بعدی شد و رفت تا در اداره کاری به ثبت نام کند. به مادرم گفته بود که بعد از سالها تجربه کاری تصمیم گرفته است اعلام کند مهارت هر شغلی را دارد. پدرم توجهی به اعتراض مادرم نکرد و گفت گمان نکنم در حال حاضر در شرایطی باشیم که بخواهیم این نه آن نکنیم. وقتی برای من به سختی کار پیدا میشد برای مرد پنج و پنج سالهی که در عمرش فقط یک شغل داشت سختتر بود. بعد از یک مصاحبه دیگر، وقتی برگشت خانه با نومیدی گفت که حتی کار انبارداری یا نگهبانی هم گیرش نمی‌آید. ترجیح می دادن جوانهای هفته سالهی دماغوی غیرقابل اعتماد را که دولت مزدشان را پرداخت میکرد استفاده استخدام کنند تا مرد گندهی که سوابق کاری درخشانی دارد. بعد از دو هفته تلاش و نومیدی مادر و پدرم پذیرفتند که باید تقاضای کمک هزینه کنند. تمام شب نشستند و فرم پنجاه صفحه‌ای را پر کردند و پاسخ دادند که ماشین لباسشویی‌شان چند کیلویی است و آخرین بار کی از کشور خارج شدند. بابا می گفت سال 1988 بود. من هم پولی را که ویل به من کادوی تولد داده بود، توی قوطی پسنداز داخل قفسه آشپزخانه گذاشتم. با خودم فکر کردم حالا خیالشان راحت می شود و احساس امنیت می کنند. اما صبح وقتی از خواب بیدار شدم پول را داخل پاکتی دیدم که از زیر در اتاقم رد شده بود. مسافرها دوباره آمدند و شهر به تدریج شلوغ شد. این روزها سر سرکله آقای ترینر کمتر و کمتر پیدا می شد. وقتی تعداد بازدید از قلعه افزایش می ساعت کاری او هم طولانی می شد. یک روز بعد از ظهر وقتی از خشکشویی به خانه برمیگشتم، آقای ترینر را دیدم. دیدنش چیز غیرعادی نبود، بلکه مسئله این بود زن موقرمزی همراهش بود که خانم ترینر نبود. دستش هم دور کمر زن بود. با دیدن من دستش را چنان سریع انداخت که انگار دستش به سیب زمینی داغ خورده است. صورتم را برگرداندم و وانمود کردم به ویترین مغازه نگاه میکنم. مردد بودم که بگذارم بفهمد من او را دیدم یا نه. بعد هم نهایت تلاشم را کردم موضوع را فراموش کنم. هفته ای که پدرم کارش را از دست داد روز جمعاش برای ویل کارت دعوت آمد کارت عروسی آلیسیا و روپرت کارت از طرف والدین آلیسیا بود و ویل را به جشن عروسی دخترشان با روپرت فرش ویل دعوت میکرد پاکت کلوفتی از جنس کاغذ روغنی همراه کارت عروسی رسیده بود که برنامه عروسی را توضیح میداد. با فهرست بلندبالایی از وسایلی که میهمانان در صورت تمایل میتوانستند برای عروس و داماد بخرند و من نمیدانستم چه هستند نگاهی به حروف طلایی و کارت حاشیه طلایی کردم و گفتم خجلت نکشید بندازمش دور هر کار دوست داشتی ایافه ویل کاملاً بی و بی تفاوت بود. نگاهی به فهرست کردم. ظرف کسکس دیگه چه سیغه ایه. ولی من کارت را دور نیانداختم. شاید دلیلش حالت ویل بود که سری صورتش را برگرداند و با صفحه کلید کامپیوترش درگیر شد. یا شاید هم آهنگ صدایش. آن را درون پوشه داخل آشپزخانه گذاشتم. ویل باز هم کتاب داستانهای کوتاه به من داد. به سایت آمازون سفارش داده بود. نسخه ای از ملکه سرخ بود. میدانستم از آن دست کتاب هایی نیست که خوشم بیاید. بعد از خواندن مطالب پشت جلد کتاب گفتم کتاب داستان نیست. ویل گفت ها؟ خب حالا به بخون که مجبوشی کمی در موردش فکر کنی. من هم خواندم نه به این خاطر که به علم وراست علاقه من بودم. فقط چون حوصله نداشتم ویل دائما سرکوفتم کند که کتاب را نخاندم. حالا واقعا گردن کلفت شده بود و به نحوه آزاردهنده امتحانم میکرد تا ببیند کتاب را خاندم یا نه. من هم شکایت میکردم تو معلم من نیستی. او هم پر احساس جواب میداد خدا را شکر. کتاب که واقعا ارزش خاندن داشت در مورد تنازو بقا بود. ادعا می کرد که زنها مردها را به این خاطر که عاشقشان هستند انتخاب نمی کنند. می گفت که نوع ماده همیشه دنبال قویترین نر می رود. به این امید که بهترین موجود را از او به دنیا بیاورد. چیزی نیست که انتخاب جنس ماده باشد طبیعتش اینطور ایجاب می کند. با این حرف موافق نبودم. از بحث در این زمینه هم خوشم نمیآمد نکته ظریفی در آن وجود داشت که میخواست در ذهنم فرو کند. از نظر نویسنده، ویل جسمند ضعیف و آسیب دیده بود. در نتیجه از بعد زیست شناختی هیچ ربطی به این موضوع پیدا نمی کرد. زندگی ویل فقط از بعد جسمی دوچار ضعف بود. وقتی اظهار نظر کردم و گفتم، این متریدلی یه چیز رو در نظر نگرفته. ویل سرش را از صفحه کامپیوتر بلند کرد و گفت، خب، چه چیزی؟ اگه این مردی که از نظر ژنتیکی برتده، کله خرم باشه چطور؟ سه یک شنبه ماه مه، ترینا و توماس به خانه برگشتند. مادرم به استقبال رفته بود و آنها هنوز نصف خیابان را نیامده بودند که مادرم دم در توی حیات منتظرشان بود. توماس خودش را بغل مادرم انداخته بود و مادرم می توماس در این مدت قد کشیده، تغییر کرده و بزرگ شده است. حالا مرد کوچکی بود. ترینا موهایش را کوتاه کرده و قیافه آدمهایی تحصیل کرده را به خودش گرفته بود. و کتوکفش تابستانی بندبندی پوشیده بود که قبلا ندیده بودم. تعجب کردم و تنگ نظرانه با خودم فکر کردم پول از کجا آورده است. وقتی مادرم توماس را با خودش داخل حیات می‌گرداند و های توی آبگیر کوچک را نشان می‌داد، از ترینا پرسیدم. خب، اوضاع چطوره؟ بابا با پدربزرگ نشسته بود و فوتبال تماشا میکرد صدایش میآمد که وقتی گل به خطا رفت، با نومیدی فریاد کشیده بود. عالی، واقعا خوب. البته اینکه کسی نیست توماس را نگه داره، کمی سخته. کمی هم طول کشید تا به مهد کودک عادت کنه. به جلو خم شد. ولی چیزی به مامی نگو. بهش گفتم که هیچ مشکلی پیش نیومد. دانشگار دوست داری؟ چهره ی ترینا به لبخندی باز شد. لو و است. نمیتونم بهت بگم چقدر. کلی کیف میکنم که دوباره مغزمو به کار انداختم. انگار چیزی رو که سالها پیش از دست دادی حالا دوباره به دست آوردی. به نظرت مسخره نمیاد؟ سرم را به علامت منفی فیتکان دادم از صمیم قلب برایش خوشحال بودم میخواستم در مورد کتابخانه بگویم و کامپیوتر و کارهایی که برای ویل انجام داده بودم اما فکر کردم تازه از راه رسیده و خودش باید حرف بزند روی صندلی های تاشا نشستیم زیر چتر آفتابی پارهپره. و از لیوانهای دستدار جرعه جرعه چای سرکشیدیم و من می دیدم چه ظاهر مرتبی دارند. گفتم دلم برای تنگ شده بود. از حالا به بعد بیشتر آخر رفتا میایم خونه. من، لو، فقط این توماس نبود که باید عادت می کرد. خودم هم به زمان احتیاج داشتم تا بتونم تغییر اجاد کنم. فقط به زمان احتیاج داشتم که یادم دیگه بشم کمی فرق کرده بود به نظر عجیب می آمد که چند هفته دوری از خانه بتواند از آدم این طور بسازد حس میکردم آدمی شده است که من دیگر نمی شنسم. به طرز غریبی حس می خودم پس رفتم مامی گفته که اون مفلوج تو اینجا اومده بود اون مفلوج من نیست اسمش ویله ببخشید ویل با این حساب اوضاش خوبه کار همون فهرست کذاییه هی کم و بیش بعضی برنامه بهتر بودن از مصیبتی که در مسابقه اسب دوانی پیش آمده بود حرف زدم و از موفقیت غیر کنسرت ویولون از پیکنیک که می گفتم وقتی هم ماجره شب تولدم را تعریف کردم، قشقش خندید. میدیدم تلاش می کند درک درستی از موضوع پیدا کند. به نظرت پیروز میشیم؟ انگار نوعی رقابت بود. شاخه ای از پیچ امین و دوله جدا کردم و برکایش را یکی یکی کندم. نمیدونم. فقط میدونم تا آخرش باید برم. حرفای خانم ترینر را در مورد سفر به خارج از کشور برایش گفتم. باورم نمیشه تو به کنسرت ویولون رفته باشی؟ خوشم اومد. ابرو بالا داد آره واقعا خوشم اومد. خیلی هیجان داشت. با دقت نگاهم کرد. مامی میگه خیلی نازنین بود. آره خیلی. خیلی هم خوشتیب. معنی به نخایی نیستش که آدم گوش باشه. بعد توی دلم گفتم لطفاًم نگو چه وحشتناک که اینجور از بین رفت. اما شاید با باهوشتر از این حرفا بود. مامی واقعا تعجب کرد. فکر کنم خودش آماده کرده بود که با یک گوش‌پوش روبرو بشه. بقیه چای را در باغچه ریختم و گفتم. ترینا مشکل همینجا مردم اغلب اینطوری فکر میکنه آن شب در طول شام مامی زوغ زده بود و سر از پا نمی غذای مورد علاقه ترینه را پخته بود توماس هم استثناً اجازه پیدا کرد تا دیر وقت بیدار باشد. نشستیم و خوردیم و خندیدیم و از هر دری گپ زدیم. چیزهایی مثل تیم فوتبال و شغل من و های ترینا. ما شاید صد بار از ترینا پرسید که آیا می تواند از عهده همه چیز برایت، آیا توماس به چیزی نیاز ندارد، طوری که انگار خودش امکان کمک به او را دارد. خوشحال بودم که پیشو پیش به ترینا گفتم پدر و مادرمان وضع مالی خوبی ندارند. و دستشان تنگ است ترینا هم معدبانه و با قاطعیت جواب داد که مشکلی ندارد. به ذهن خودم رسیده بود که بعدا واقعیت را بپرسم. نصف شب با صدای گریه از خواب بیدار شدم. تماس بود که توی اتاق قوطی کبریتی گریه میکرد. صدای ترینا را هم میشنیدم که میکوشید ساکتش کند. صدای کلید برق میآمد که روشن و خاموش شد. خواب را هم جابجا کردند. در تاریکی دراز کشیدم و به فیلتر نور سودیامی که از لای پردهی کرکرهی به سخف تازه رنگ شده اتاقم میتابید چشم دوختم منتظر ماندم تا سر و صدا بخوابد. اما ساعت دو دوباره گریه شروع شد. این بار صدای پای مادرم را پاورچین پاورچین از راه رو شنیدم. نجوه به گوش میرسید. آقابت توماس ساکت شد. ساعت چهار با صدای باز شدن در اتاقم بیدار شدم. با بیحالی پلک زدم و به طرف نور برگشتم. توماس در سایه روشن در ایستاده بود. شلوار راحتی برایش بزرگ و دور پایش پیچیده بود. نصف پتویی که همراه داشت روی زمین ولو بود. صورتش را نمیدیدم، اما پیدا بود مردد است و نمیداند چکار چه کار کند. زیر لب گفتم توماس بیا تو. همینطور که آرام آرام به طرفم میامد. دیدم که خواب و بیدار است قدمهایش با تعنی بودند انگشتش توی دهان بود پتوی عزیزش به یک طرف پیچ خورده بود لحاف را کنار زدم و توماس کنارم دراز کشید سر پرمویش را روی بالشت گذاشت و مثل جنین خودش را جمع کرد لحاف را رویش کشیدم کنارش خوابیدم و نگاهش کردم. حیران بودم که چقدر سری به خواب عمیق فرو رفته است بیشانیش را بوسیدم و زمزمه کردم شب خیر عزیزم شب خیر بعد حس کردم یک دست کچولو بلوزم را به چند گرفت فهمیدم میخواهد مطمئن شود که تنهایش نمیگذنم کی به عمره رفته کجا بود؟ زیر سایبان نشسته و منتظر بودیم باد و بورانی که یک بار راه افتاده بود بند بیاید و ما بتوانیم در فضای سبز و باخچه های پشت قلعه قدم بزنیم. ویل دوست نداشت به بخش اصلی قلعه برویم. مردم زیادی آنجا بودند و نگاهش می‌کردند. باغچه سبزیجات که کمتر آدمی پا به آنجا میگذاشت گنجینه ی سری ویل بود. گذرگاه شنی خوبی بودند که باغ میوه و باغچه پرت و دور افتاده پشت قدر را از هم جدا میکردند. صندلی چرخدار ویل هم می توانست راحتی از آنها عبور کند. از چه نظر؟ این چیه میخواای بهم بدی؟ از توی فلاسک مقدار سوپ ریختم و دهانش گذاشتم. سوپ گوجه فرنگی؟ آه، خیلی داغه. کمی صبر کن از گوشه چشم به دور دست نگاه کرد توی سی سالگی به کوه کریمانجا رو سعود کردم واقعا دیدنی بود اصلا نمی شد باور کرد چه ارتفاعی؟ حدود شیش هزار متر تا قلعه اوهورو بیشتر هزار متر آخر رو می خسیدم. ارتفاع بد جوری آدم عذیت میکرد. هم بود؟ نه. لبخندی به من زد. ادامه داد. <تصفيق> مثل ایورس نیست. نه اون موقعی سال که من رفتم. به دور دست ماتش برد. قرق در خاطراتش شده بود. بسیار زیبا بود. بهش میگن بام وقتی اون بالا هستی؟ انگار دارید ته دنیا رو میبینیم. ویل لحظه ای ساکت ماند. نگاهش کردم واقعا دوست داشتم بدانم کجا بود و به چه فکر میکرد. وقتی این حرفها رو با هم میزدیم مثل شاگرد کلاسی بود که من معلمش بودم. پسر بچهی که به خاطر کارهای مخاطر آمیزش حساب خودش را از بقیه جدا می دانست. دیگه از کجا خوشت اومد. خلیج جزیره ماریس، مردمان دوست داشتنی، سواهل زیبا، چه قواسیا که نکردیم. پارک ملیت حسابا تو کنیا، خاک سرخ و حیات وحش، یاسمید تو کالیفرنیا. سخرا چنان بلندن که اصلا نمیتونی اندازه هاشون رو توی ذهنت محاسبه کنی. از شبی تعریف کرد که تا صبح از صخره بالا رفتند و بر لبه دیویستی متریش اتراف کردند. خودش را توی کیسه خواب چپاند اما قبلش کیسه خواب را به صخره بسته بود. چون ممکن بود در خواب قلت بزند و صخره پرت شود. من گفتم تو الان داره کابوسای شبونم رو تعریف میکنی. از کلان شهران خیلی خوشم میاد. عاشق سیدنیم. سرزمین شمالی، ایسلند جایی هست نزدیک فرودگاه که میتونی تو چشمه های آب گرم آتش آب تنی کنی به زیبایی و شگفتی تابلوهای های نقاشی وای چین مرکزی از مرکز و آستان سیچوان حدود دو روز رفتیم تا با اونجا رسیدیم بومیا به طرف ما توف می‌نداختن چون تا اون روز سفیدپوست پوست نهیده بودن جاییم هست که نرفته باشی؟ کمی سوپ سرکشید کشید شمالی هیچ وقتم تا تا دیزنیلند نرفتم باورت میشه حتی دیزنیلند توی پاریس هم نرفتم من یه بار بلیط هواپیما به استرالیا گرفتم هرچند نرفتم با تعجب به من نگاه کرد کاری پیش اومد ولی مهم نیست شد روزی رفتم نگو شاید که باید روزی از اینجا بری به من قول بده که باقی عمرت تو این خراب شده نمونی به تو قول بدم چرا؟ میکوشیدم لحن صدایم را آرام نگه دارم مگه تو کجا میخوای بری؟ من فقط هم... اصلا نمیتونم فکرشو بکنم که تو همه ای تو اینجا بمونی آب دهانش را گرد داد تو خیلی جوون هستی، خیلی پرشور. صورتش را از من برگرداند. آدم فقط یه بار دنیا میاد. واقعا وظیفه داری از تل امکان بهترین زندگی رو در پیش بگیری. با احتیاط گفتم. قبول. مم. حالا تو بهم به بگو کجا برم. اگه خودت میتونستی جایی بری کجا میرفتی؟ همین حالا؟ همین حالا. اجازه هم نداره بگی کلیممانجا رو. باید جایی بشی که منم دوست داشته باشم. وقتی عضله صورتش شل شده آرامش در صورتش دیده شد انگار فرد دیگری بود. حالا لبخند بر چهرهرش نشسته بود و چشمانش از شادی برد میزدند. پاریس. بیرون کافه توی لوماره می شستم و قهوه میخوردم با. کراسان گرم و کرهی بدون نمک و مربای توت فرنگی. لوماره؟ نایه کوچیکی تو قلب پاریس. پر از خیابونهای سنگ شده و آپارتمانهای تنگ هم. مردهای شوخ و شنگ و یهودیهای ارتودکس و زنهای پیلی روزی شبیه برژید باردا بودند. تنها جایی که میشه موند. صورتم را به طرفش برگردندم. تلاش کردم آهنگ صدایم آرام باشد. میشه رفت. با قطار سری وسیر سیر لندن به پاریس. اصلا هم سخت نیست. بگمونم گمونم حتی نیاز نیست از نیتن بخواییم با ما بیاد. من تا حال پاریس نرفتم. خیلی هم دوست دارم برم. از تاید دلم دوست دارم برم. به خصوص با کسی که راوچه چاو بدونه. ویل چی میگی؟ خودم را در آن کافه تجسم میکردم. آنجا هستم. سر میزی نشستم شاید هم یک جفت کفش نوع فرانسوی که از بوتیک شیکی خریده پایم است و کلی کیف می شاید هم با دستی که انگشتنش را به سبک فرانسه لاک زده نانشیرینی بر و میخورم. حتی تعم قهوه را هم حس می و مزهش در دهانم بود از میز کناری هم بوی سیگار مارک فرانسه می نه ها؟ نهزهی طول کشید تو از آن حال هوا بیرون آمدم نه خودت الان گفتی کلارک ده. متوجه نشدی درم نمیخواد با این با این برم به صندلی چرخدار اشاره کرد؟ صدایش شاهسته شده بود دوست دارم همون ویل سابق باشم و برم پاریس درم میخواد روی سندلی معمولی بشینم و لمب بدم لباس مورد علاقه بپوشم دخترهای خوشگل فرانسوی برام چه رو بیان همونطور که واسه مردهای دیگه میان نه اینکه تا دیدن آدم بزرگی هستم که مثل بچه توی کالس که نشستم فاری صورتشون رو برگردونن ولی میشه امتحان کرد اصلا هم لازم نه نه نمیشه چون همین الان میتونم چشم ببندم و دقیقا خودم رو تصور کنم که سیگار به دست توی خیابونی توی پاریس نشستم لیوان بلند آب میوه خونک مقابلمه بوی استیک که سرخ شدهام میاد و صدای مترگازی از دور تمامشو به خوبی حس میکنم. آب دهانش را داد. اگه بریم من با این صندلی لعنتی تمام اون خاطرات اون شروحی جان همش دود میشه و میره با. وقتی دارم تقلیم میکنم پشت میز قرار بگیرم از جدول خیابون پاریس عبور کنم راننده تاکسی که ما رو سوار نمیکنه، دو شاخه صندلی صندری که به پریزهای های پاریس نمیخوره، اون وقت همه اون خاطرات خوش نابود میشه. قبول داری؟ صدایش خشن شده بود در فلاسک را بستم و چون نمیخواستم صورتم را ببیند سرم را پایین انداختم و به کفشم نگاه کردم گفتم آره، آره، بعد آه عمیقی کشیدم. زیر پای ما، اتوبوسی ایستاد تا عدهای دیگر از گردشگرها را دم در ورودی قلعه پیاده کند. در سکوت نشستیم و به آدمهایی که از اتوبوس پیاده می شدن چشم دوختیم. مسافرها وارد قلعه قدیمی شدند و صف منظمی تشکیل زدند. آماده بودند تا آثار ویران شده ی قرن گذشته را ببینند. حتماً ویل متوجه شد که من کمی آرام شدهم، چون چرخی به طرف من زد. جهره اش از قبل بود. خب که مثل اینکه بارون بند اومده. امروز بعد ازار کجا میریم؟ دهلیز هزار پی چقدره؟ نه. پیش از اینکه خودم متوجه باشم جواب از دهانم خارج شد. سنگینی نگاه ویل را حس می کردم دچار حراس از مکانهای بسته هستی؟ تقریبا سرگرم جمع کردن وسایلمان شدم بیا برگردیم خونه. آخر هفته بعد نیمه شب رفتم طبقه پایین تا آب بخورم. دچار بیخوابی شده بودم و هر کاری میکردم خوابم نمیپرد. برای همین ترجیح دادم بلند شوم تا اینکه توی رختخواب خواب دراز بکشم و با مشتی افکار کلنجار بروم. اصلا دوست نداشتم نیمهشب شب از خواب بیدار شوم. ناقافل ذهنم به ویل کشیده میشد و دوست داشتم بدانم آیا او هم در آن طرف قلعه خوابش نمیبرد؟ توی ذهنم همش تلاش می کردم به افکارش پی ببرم و بفهمم در ذهنش چه گذرد. ولی ذهن او مکان تاریکی بود که ورود به آن ممکن نبود. واقعیتی وجود داشت. من و او جایی رفتیم. زمان عین برق و باد می‌گذشت. حتی نتوانسته بودم متقاعدش کنم سفری به پاریس کنیم. وقتی دلیلش را گفت، دیگر جایی برای جر و بحث باقی نماند. هر سفر راه دوری که پیشنهاد میکردم به دلیل رد کرد. اگر به او نمیگفتم که چرا تا این حد نگران هستم، نمیتوانستم رویش تأثیر بگذارم. داشتم از کنار اتاق نشیمن رد شدم که صدایش شنیدم. صدایی خفه. شاید هم ناله بود. ایستادم. چند قدم به عقب برگشتم و مقابل در ایستادم. در را آرام هل دادم و به داخل سرک کشیدم. توی اتاق نشیمن، کوسن‌های کاناپه روی زمین بود و با آنها تشک درست کرده بودند. به در و مادرم را دیدم که زیر رو تختی مهمان دراز کشیدند و سرشان سطح بخاری گازی است. در تاریک روشن و اتاق، لحظاتی به هم زل زدیم. لیوان به دست، بی‌حرکتی شد. اینجا چه کار می‌کنید؟ مادرم خودش را روی آرنج بلند کرد. آروما ما نگاهی به پدرم کرد عوض کردیم آب و هوا عوض کنیم ها؟ عوض کردیم آب و هوا عوض کنیم با نگاهی که به پدرم کرد از او کمک خواست بابا گفت اتاق خوابمونو دادیم به ترینا بابا بلوز کهنه آبی با سرشنه پاره تنش بود موهایش هم به یک طرف سیخ شده بود ترینا و توماس توی اتاق قوطی کبریتی راحت نبودن ما هم گفتیم که میتونند اتاقا خواب ما بخوابن ولی نباید روی زمین بخوابید اینجای راحت نیستید بابا گفت راحتیم عزیزم باور کن بعد همینطور که ساکت ایستاده بودم و تقلیم میکردم به فهمم چه شده. بابا اضافه کرد. فقط آخر هفته. تو هم نمیتونی توی اون اتاق غودی کبریتی بخوابی. باید توی اتاق خواب خودت بخوابی. این... آب دهانش را گرد داد. اه. تو تنها کسی هستی که سر کار میری. پدرم که بخص کرده بود به چشمانم نگاه نمیکرد. مادرم عملاً بیرونم کرد. لو برگرد به رخت خوابت. زودتر برو. برو ما خوبیم. از پله‌ها بالا رفتم. پای برهنم هیچ صدایی روی فرش ایجاد نمی‌کرد. زمزمه‌های نامفهومی از طبقه پایین می‌شنیدم. لحظه‌ای پشت در اتاق خواب پدر و مادرم ایستادم. حالا صدایی می‌شنیدم که قبلاً نشنیده بودم. از داخل اتاق صدای خورخور نفساي توماس مي آمد. بعد آهسته به پايگرد پله‌ها برگشتم و به اتاقم رفتم. آهسته در را پشت سرم بستم. روی تخت بزرگم دراز کشیدم و تا خود سحر به بیرون پنجره به نور سدیومی خیابان خیره شدم. عاقبت خوشبختانه چند ساعتی به خواب عمیق فرو رفتم. تقویم نشان می‌داد 79 روز باقی مانده است. دوباره به من استراب دست داد. و تنها نبودم. یک روز موقع نهار خانم ترینر منتظر مانده بود تا نوبت نیتن شود و فیل را تحویل بگیرد. بعد از من خواست که همراهش به ساختمان اصلی خانه بروم مرا به اتاق نشیمن برد و پرسید که اوضاع به نظرم چگونه است. گفتم حالا وقتی زیادی بیرون میریم. با سر تصدیق کرد. انگار قبول داشت. بیشتر از گذشته حرف میزنه. شاید فقط با تو. بعد خنده کوچکی کرد که در اصل خنده نبود. در مورد سفر به خارج باهاش حرف زدی؟ نه هنوز. ولی حرف میزنه. خودتون که اخلاقشو میدونید. گفت. اگه می جایی بری نداره، میدونم خودت هم چندان مشتاق نیستی و پیگیر حرفی که زدی نیستی، اما ما صحبت در این مورد کردیم، با هم توافق کردیم. ساکت شد، در سکوت نشستیم، برایم توی فنجان و نلبکی قهوه آورده بود، جلعهی سر کشیدم، وقتی نلبکی را روی پایم میگذاشتم، احساس شست ساله ها را داشتم. فیل میگه که اومده خونتون <تصفيق> بله تولدم بود پدر و مادرم جش گرفته بودن فیل چطور بود خوب واقعا خوب خیلیم با مادرم گرم گرفت وقتی یاد آن شب افتادم ناخداگاه لبخند زدم منظورم اینه که مادرم از وقتی خواهرم و پسرش از پیش ما رفتن کمی دل مرده شده دلش تنگ شده من فکر میکنم ویل ویل فقط میخواست مادرم و از اون حال هوا بیرون بیاره خانم ترینر متعجب به نظر میرسید از شعورشه مادرم هم همین فکر رو کرد غهوش را به هم زد اصلا یادم نمیاد آخرین باری که حاضر شد با ما شام بخوره کیب تلاش کرد اطلاعات بیشتری دستگیرش شود ولی اصلا مستقیم چیزی نپرسید. عادتش بود. ولی من نمیتوانستم جوابهایی را که دنبالش بود به او بگویم. ویل بعضی روزها شادتر بود. بی درد سر قبول میکرد با هم بیرون برویم. سر به سرم میگذاشت و شوخی میکرد. به نظر میرسید به دنیای بیرون از خانه ارتباط برقرار کرده است. ولی من به راستی چه میدانستم. دنیای ویل یک پسکرانه پهناور و درونی بود که به من اجازه نمی‌داد حتی نیم نگاهی به آن بیندازم در چند هفته اخیر با ناراحتی تمام حس می کردم که این پسکرانه هر روز وسعت بیشتری می گیرد گفت ظاهرا که روحیش کمی بهتر شده خانم ترینر می‌خواست به خودش دلگرمی بدهد بله منم همینطور فکر می کنم این مسئله خیلی، صورتش به طرف من چرخید و چشمانش برق زد. خیلی جای شکر داره. فوق العاده است که میبینیم کمی مثل سابق شده. همه این پیشرفت ها رو مدیون تو هستیم. نه همش. اصلا نمیتونستم باش ارتباط برقرار کنم. حتی نمیتونستم نزدیکش بشم فنجان و نعلبکی را روی زانویش گذاشت ویل آدم عجیبیه. از همون نوع جوانیش حزم گردم فکر میکنه یه جورایی خطایی مرتکب شدم همیشه با این احساسم جنگیدم هیچ وقتم نفهمیدم از نظرش چه خطایی تلاش کرد به زور هم شده لبخند بزند ولی نتوانست نگاه مختصری به من کرد و بعد صورتش را برگرداند. وانمود کردم دارم قهفم را می نوشم. در صورتی که فنجانم خالی بود. لویزا مادرت بهتر شده؟ بله. بعد اضافه کردم. این خوهرمه ای که از دستش گفریم. نگاه خانم ترینر به بیرون پنجره بود. به جایی که باغچهٔ عزیزش رو به شکوفایی بود هایی که آمیزه زیبا و ملایم از انواع صورتی ارقوانی و آبی بودند بی آنکه سرش را برگرداند گفت فقط دو ماهان این وقت داریم. فنجن را روی میز گذاشتم دوری با احتیاط که صدایی بلند نشد خانم ترینر من نهایت تلاشم و میکنمسری می دونم لویزا و از اتاق بیرون رفتم بلوز بیست مه از دنیا رفت در آپارتمانی در سوئیس. ولوز تیم فوتبال محبوبش تنش بود و پدر و مادرش در دو طرفش بودند برادر کوچکش از آمدن خودداری کرد اما بیانیه ای سادر کرد و گفت که هیچ کس به اندازه برادرش محبوب و مورد حمایت نبود لئو ساعت سه بعد از ظهر محلول شیری رنگ و مهلک باربیتورات را سر کشید والدینش گفتند که ظرف چند دقیقه حالتش طوری شد که انگار به خواب عمیقی فرو رفته است. آن روز بعد از ظهر، کمی بعد از ساعت چهار ناظری که شاهد همه چیز بود رسما مرگش را اعلام کرد. دوربین هم از صحنه فیلم برداری می کرد تا نظارت به طور کامل صورت گرفته باشد. از مادرش نقل قول کرده بودند. به نظر آرام می رسید. و این تنها چیزی است که آرامم میکند. پلیس پدر و مادر لئ را سه بار بازجویی کرد حتی ممکن بود مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. مردم نامه های سر و پا نفرت و انزجار به در خانهشان فرستادند. مادر لو بیست سال پیر شده بود. با این همه، وقتی حرف میزد چیزی در وجودش بود، چیزی در کنار اندوه و، خشم و استراب و خستگیش که از رهایی میگفت رهایی امیر مادرش میگفت سرانجام دوباره همان لحو شد